خو صحبت جلسه در مورد کلا نماز عبادت راز و نیاز نیایش و کلا مسئله عبودیت در مذاهب که در اسلان ها تقام سبات است سی مکن در جنبههای کلی ادقل بهشبن اون که اسمش نماز هست این مفهوم خاص و تخصصی، این در ما این مفهوم تخصصی از نیایشه خب کلن مفهوم نیایش همینی رازم نیاز با خدا همینطور که صحبت شد خود لغت نماز در زبان فارسی که معنی های متعادف با نم آز هست نم آز آز با رفهم عشد نیاز با رفهم و وله اتش و خواهش های انسان نم آز و رو چه بست میشه گریه نیاز های انسان دانست یعنی نیاز های انسان در رویانگی با خدا گریه میکنی میشه خدا و طلب برآورده شدن میکن که از قطعی وسش در کرد به این زبون نماز ومفوم گریه نیاز به درگاه خداست انسان نیازهای خودش رو به درگاه خدا میبره و این نیازها هستن که گریه میکنند، طلب میکند خاهج میکنند. این معناه کلی نماز تواقع میشه گفت ماهیت همه نیایش که در مذاهب مختلف ما هستیم این ماهیت و بساره همه نیایش هاست در تمام مذاهب انسان اگر نیاز نداشته باشه در حقیقت نماز نداره مطمولیتش نه که انسان اگر نیاز نداشته باشه اصولاً با خدا سروکای نداره و نیاز به خدا بدونه میکنه و بلکه اصلا خدا رو میمیشنسته اگر انسان تنها موجودیه که به درگاه خدا راز و نیاز میکنه نماز میکنه به خدا رجوع میکنه و خدا طلب چجور میکنه الهش دیگه انسان نیازمندترین ترین حیوانات هست همه حیوانات قدیم نظام تریزی نیاز زندگیشون بها ورزه میشه و هرگز شدت نیاز به اون حد نیست که اونها رو آخواد به سوی خدا می‌کنید باینام دیگه چی نید از واسه هیوانات ما می‌تونیم به زبان قرآن در معارف دیگه رو می‌دونیم که حیوانات هم همه ذکر خدا رو میگن. این ذکر خدا با نیاز بردن به خدا فرق می‌کنه ذکر خدا همین خدا می‌کنه خدا به زبان می‌گنه همینطور که در یکی از کتاب ما شاقش گردیم اصلا اصفاتی که حیوانات از خودشون همه اصمای الهیه مثل هوهو کردن سگ یا عبوب کشیدن گرگ و صدای پرندگان حتی صدای اشیا که به هم میخورن اینها خیلی هاش هستن به صورت نرب در اصمای الهی انبیابولیان گفتن وجود داری خب این ذکر خداست تصفیه خداست پلستش خداست برخواسته از عشق به خداست و دوست داشتن که دا این دو جور خدا را سفاد دردنیم یکی از روی محبت، یکی از روی نیاز است خب، سباقه از این لا باز کفت از اکثر انسان ها جدوتره هست در قرآن ما میکنیم که اکثر آدم‌ها ها از حیوانات پستر هست یک دلیل پستیشون اینه که از خدا به اصلا یادی خدا رو نمی کنند. اگر هم یادی خدا رو می به خدا روش میکنند فقط به خطر نیازشونه نیاز براورده شد در بشروع خدا یادشون میره تا نیاز رو به دست خب این از های وجود انسان هست و از همین دیدگاه میشه گفتش که نماز و نیایش دو ماهیت متعبید یک حالت دعایی داره که همون جنبه نمازی هست نم آز رسول تعالی خوش بگذره. ثادلش و لیمایی شود نداریش و یک نیایش داریم که از روی محبت هم طور که انسان یاد دوست یاد یار خودش رو میکنه، یا دوستا رو بده، به یزار اون. تمثیل خب مسلمان این صلوات که ما در اسلام دادیم که بایستی واسطه معراج مؤمن باشه و معراج مؤمن هست در حقیقت. مسلمان این صلوات از جنس دومه، یعنی این نور دوستی و محبتی به خداست نه از بوی نیاز, نیاز. چرا برای که انسان از بوی نیاز؟ آدم اگر بس کن بدعی داره با پول میخواد دیگه آدم میگه بانک نمی کار بانکو ببینه که اگر بیدید هم باشی که افاره بس بدهست هم بیزار رو دیگه دیگه از قیافه یک کسی که میخواد دیگه ازش پول بگیره قیافهش بیزاره میگه پولو بده می ب خب پس اصلا نیاد به دیدار نیست. اما این این نماز عالفانه ای که به میراد میلسه از میراد نیاد یکی از این محبت هست. اصلا خداوند روز تاره ای از این محبت یاد خدا به شدت میلسه که تبدیل به لغاو الله میشه. تبدیل به دیدار بخون میشه. بعد این در نماز ای کلی. <تصف> ولی در قرآن خب آنچه ما میگیم نماز متعادفه اقامه صدات صلوات. خب ما میدونم که در قرآن فقط مؤمنان هستن که در وست رو رو به اقامه صدات مومنانی اینطور تخصصی یعنی مسلمین یا ایلوهن ناس نگفته که ایلوهن ناس به اقامه صدات نمون یا ایلوهن ناس نه مومنان خب مومنان در خب ما تو قرآن خود قرآن تریف کرده که مومن چیه میگه مومنان کسانی هست دین و اسلام در آشران قلبی شده دارین خدا رو در دلشانه اسلام قلبی شده، اسلام نوری خداست اونها در وقت شدن به نماز مسلمین در وجتانوها نشود خب این دفعه قلبی شده این دفعه قیل خدا درشان قلبی شده قلبی قلب جای محبت دیگه یعنی اینها خدا رو دوست دارند، دین خدا رو دوست دارند، عهدشها خدا رو دوست دارند، فرامناک خدا رو دوست دارند این دلیل نماز نمی خونن این درین کارسون خلاف نمیدنم بین درین رو رعایت نمی, کنم. این حلو حلو نمی کنم که مبادا به جهنم برن یا ان به بهشت برن ببین اینها دعوت به صلوات نشودن مؤمنان یعنی که اهل دلن منهم زوار دیگه اهل دیر دل. حلقه یاری پس تقوایی صلوات تا قرآن خداوند کسایی رو دعوت کرده به صلوات تا سالات که دو مومن, باشن. مومن, باشن. مومن, باشن. مومن باشن. دوست پس این وضعی که واضح است اونجایه هیچ تصفیری نداره تو قارم خیلی واضح این برسوده بلا همینه این همه دعوت شده مؤمنان به صلاحات وزن و بعد در یک جای دیگه صحبت بسته وای بر نمازگذاران این وای شامل کسانی میشه که اینا اهل دین نیستن خدا رو دوست ندارن اون اگر نماز بخونن این از نشانه های در است حالایی طرح زنده یک از من مخالفان و تختیر کنندگان دین رو یعنی مخالفان خدا رو معرفی کنم سه گروه رو عرفی میکنم یکی این گروه نماز اینگیختی که معاید و نمازش هم چیه از این هم ساون و از هم یعنی سهلیت و ریا معاید دیده یعنی از دوی نماز میخون الله که از این لیکر باشه یعنی خود کاری از دیاری میشه دیگه خب این یه وال بعد میه خدا وقت میگی این واسه یتنا پدر میاد. با من دیگه نیست. بخودین تا خوشی یه قربونی دار ما تو نیویاست. خب شما با من یه جوننگ قراره رو رو. فرماتم دیگه. با من دیگه نمیخواد که این قلیه هم قرآن خب از این نظر میشو گفت پس اقام مثلات هم مربوط به مومنان خب، یه مربوط به محبت عشق و دوستی خب که پرخواستت محبت و عشق و دوستی باشه مسلمان درش دکرا نیست درش ریا نیست پس در اینجا مثلا گفته میشه که گفت گفت اقام مثلات واجب مستعد ولی خب، خب. برای کسانی ای که ایمانشون قلبی نیست و خداوند رو دوست ندارن محبت خدا محبت دین نیست در دل اینا نیست ها برای اینا حرامه دیگه حرامه نی وای بر تو که نخون او بده ها آدم مثلا با آدم دوز رو که وای بر تو ها خب ولی پس اینا هم داریم برای اینا بر بر حرام برای حرامه. خوب برای مؤمنان واجبه خب این واجب یا نمی‌دونم مستعد بودن شرعی حقوقی نیست چرا برای که محبت رو که نمیشه حکم شرعی برای اسره بده. آیا میشه که زنش دوست نداره، بچه‌ش دوست نداره، با اعدام پشه ما دوست نداره، اون خودش کلنجارش می‌گیره، آدمو، میخواد دوست داشته باشه. آه؟ دل صاحب خونه خدا دل خانه خداست. پس یک عجزه. چند تا میگن انسان کامل، انسانی حل محبت، که آدم و آدم دوست داره. این انسان دوست داره. چون از همون نفرد داره خدای زرش میگشه در واقع این جزاشه بنابراین در اینجا اینگه آیا واجبه یا مصبر اصلا این بحث اصلا این سوال اصلا قلصه چه خدایم دوست داره تا به سر خواهد صداد ببین؟ اینو از خودش میدونه و خدای خودش خیلی هیچ کد از بیرون نمیتونه برای کرایتی باز تنین تکلیف کنه خب از این نماز این شکلی خدا میگه بر تو، حالا خب. خب. خب. که من به عنوان یک مسئول این جامعه یا به عنوان پدر نمیدونم زنم و بچه‌مونم نمیدونم وادار به نماز میکنم باز و بر من که اینها رو به زور وادار به نماز ریایی و اقرایی می‌کنم بنابراین گناواری دیگران رو بخاطر من آه دولتی سیاست، سیاست هر چیزی وادار به نماز کردن جز گناهانی کبیره است ها کبیره بودن این گناه همینقدر چند که خدا میگه باید. طب اون خود که که دو بار یعنی دفعه سه بوره بر انسان میگه وای بر تو آه؟ یعنی این قاعده خدا نشون میده خدا با منته بشه رتت میگونه دیگه ها وقتی ما بهش میگه وای بر تو یعنی اصلا میگه وای بر تو خب معلومه نماز میشن در اینا که اون کلیران باشه نماز کسی که نماز دیوی اختیاری رو به هر بحانه ای او هم می بزرگترین معصیت کنندبان بر خداست و وای خدا بر او هم نازل میشه. شه خبتنی هم جمعه دیگه حالا به نظر من کلا پس نماز دعایی رو بهتره بازش نماز تمام سلاح نرزاریم راست ن من میکنیم می کنیم. ما فکر کنید نماز هم مسلطه نه خیر تور نیست نماز اباصال و فرنگی داخل فارسی سوالی داخل المپی یک معنی خودشو داره و معنی خودش داره ولی انسان حالا دینش واقعی نیست اصلا داره چه اصلا کافر هم گرفتاری باختی دیگه موضوع شه به خدا کنه ولی خیلی نداره که اینا با مسائل با قهرم مسائل کار انسان میتونه برید در این اون در سرنایی خودش بدن سرخوتی در اقافه خدا توبهانه یا نیاز گرفتایی داره بگید رفت کن بسیارا خوبه خدا این کارو بکنید بکنید خیلید خوب خود اینسان کنه دیگه خدا خدا هم گفت گفته که ها وقتی که اعضاب گرفتایی و بشن خود میارم منو خواهد سرنا صدا میکنید تا اعضاب رفت میشه در مرسد هست نماز؟ از جنس اقامه سلاط که مال مومنانه در حقیقت باید گفتش که نوی حدیث نفته از شما نگو کنیم نیایش از هر نوی چه دعا چه پرستشه چه همدی، هر چیز هست حدیث صحبت کردن انسان به خودش. خب انسان سر نماز رو یا یک گوشه میشینه تو به خدا را هفت خدا کو کسی از اونجا نشسته و از بچه داریم میگن این است، آها، نباقی کیه؟ اونو باستی روشن ما یه خدا اونجا نشسته خدا حاضر معلومی که خدا کی کی که هم که الله فردداش نیست که هر کسی که ایی خداو یه پالی مختصم خب، نیست. خدا برای کسانی حاضر داره، برای ولی الله خدا هزلی کیا بسازه میتونه مخازد. دید. تا اونجا که دیزایش میکن ذهانی برای همه معلوم خدا نیست. هر با میزنن؟ با خودشون می دارن هر این حدیثه با نفس خود، با خود گفتو بود کردن با خود منطقه نه هر خودی انسان چندین خود در وجود نفس خودش داره دیگه یه خود ذهنی یه خود عاطفی یه خود قریضی خود حیوانی انسانه خود شیطانی انسانه انباه خودها در نفس انسان ها هست اون نماز دعا با خدا در واقع میشه گفت حدیث نفس سخن گفتن با خویشتن منطقه با عالیترین خویشتن خویش انسان تو باید با اون خویشتن خدایگونه خودش سخن دیگه دار حدیقت انسان با اون خودی از خودش داره حرف میزنه که قدرت خدایی داره چرا؟ چون قدرت خدایی داره انسان نیازش رو میبره و درگاه بوده که قادر، قهار، مهربان، خالق، هر کاریش میخواد میکنه میتونه عذاب کنه، میتونه ببخشه، میتونه کریم باشه، میتونه لطیف باشه، ممکنه میتونه انتقام بگیره خب، پس یک اول قدرتیست دیگه یک قدرت مطلقیست خب، این واقع خدا نیست این در حقیقت، اون منه در لباشان و شیر مثلا میشه خب، اون منه برسره، اون سوپر اگو یا آجر اگوی خود برترین انسانه ادم با او صحبت میگه میخونه خوب آیا در اینجا ببینیم رو که میگیم اینو خود خدا میگه این طریقه برماشقاسی نبود حبیل بود ما حالا ما برماشقاسیشم گفتیم. در خود قرآن داریم میگه از سر خدای خدایی که میخوانن هوای نفس آنهاست ببین هوای نفس همین دیگه نفس خود در قرار نفتی باید یعنی خود همون به سلسی که در لبانشتاتی بفته میشه تا وقتی میگه خودشونه میخونن این خود خدا میگه اکشان بردم اون خدا خدایی که میگه منظور خودشونه تو اون خوده قرار قدردشونه بلا همون میگه که این ظلمه، شرکه ببینید ظلم عرضی میگه این شرکه بعد میگه اعمال مشتقان هم واسده در قرار هم چندگی داده این کبازونه اعمال مشت وقتی که با انرژی اینا خواب جوابی توش در برای همین ها این نوداها هم نمیاد جواب نمی نمی با خدا که خدا به خدا جواب کنه من برای همین که هر وقت گیر گرفت وقتی خدای یا خدا یه حالا چیه به سری قمیت حالا چیه به چه به نیاز چه, چه مامدادی چه زاویه کنج کنچ به دعا می‌دونن اینی دعایی یعنی خاصندیه اینی خدا به بده بیشتره فلان فلان یه کس رو که کی خدا رجیم کنن هر چی بیشتر رجیم کنن اگه کردند یه میشکی تقریب بوده خدا داشتن اون لحظات می‌دونم از دیگر میشن کافر میشن چه؟ نجوم نمی‌دونیم که با ممیدونیم نجوم نمی‌دونم که خود سرمی دو. خب بله، او خدا رو ندارد دیگه، او, او کافر است. خدا اینو که میخوane میگه کافران میگه کدومان میگه کافران، خدا را از جای بسیار دور میخوانم. جای بسیار دور تو آسمان ها یه بر میگه که دست کافران همیشه با آسمانه. این خدا بسیار، بسیار دوره. این خدا کافران خب جواب نمیده دیگه. خیلی دیروز خود نمیشنید، نمیشه باشه خدا را. قرآن میگه این نقد و ولاسیه هی اونم که قفسال میکنه این حسایی که چیکناواز میخوان هی بر کفشون آسیب میشوره. قرآن خدا میگه وای بر شما. این نکونید دیگه قربان ندیدم چیزی بابا دیگه. خب. حالا بهساز میسن اصلا چرا نفاقی که از نمازهای اکراهی و ریایی در میاد چرا انسان منافق میشه؟ و چرا قرآن میگه منافقین بدترین گفرانانند؟ ها؟ یعنی نمازخونهایی که با خدا ارتفاد قلیبی ندارن خدا رو بس ندارن اونها از کافرهایی که به خدا فوش میزنن کافرتر هست خدا پینام که بای بر شما به کافران تو قرآن نباته و بر شما خیلی نمازخونها باید بر شما خب بنابراین حلیمزان میشه گفت نیاییش نیاز کردن با خدا میشه گفت یک نوعی ذهنی داریم و یک نوعی قلبی برداریم هم توی که اتفاق برقرار کردن با هر انسانی دیگری یک اتفاق ذهنی اتفاق قلبی با خدا هم دنور ده این دنور اتفاق برقرار کردن با جهان، یکی قلبی تگیز بین با خدا اتفاق ذهنی که باید نمیمان باید قلبی باشه آه. خودش هم میگه میگه خدا کافران، خدا را در جای بسیار دور میخانن خب در جای دیگه میگه که من از اگه گردن به شما نزدیکتر هست، ببین از اگه گردن نزدیکتر یعنی توی شما دیگه یعنی توی شما، یعنی توی دل شما هسته خب، بنابراین نماز قلبی فقط جواب میداری جوابش چیه؟ اطواد رو خواه میشنید، آدم میگه میشنرد، اطواد رو قرار میکنند آقا یه خواسته ای داره برخواه دارم، اول یه شکره کسی که خدا در نای گردن در خود نز اصولا از خدا رو در اول چلو البته حساب واسه اینو ما با اخلاص استجو، ولی منان، بتواز ما و ابتدایی حتماً که روی دنیوی خدا. ولی جواب میشن. به خاطر من تا جوابات به مومن میگه جواب میشن این که ما نیا خدا مثلا به خاطر من منو بده. من جواب جواب نمیشن. به شکل مختلف. ولی غنیمت میده یا میگه صبر کن. به صبوری نیست. میگی نه من نشون میدم و حلیب میکنه که به و تو راضی میشی که ای فیران به دفاع با بیمارم به من شفا و به میده این جواب جواب دیگه آه. یا این جواب عملی یا در عمل من جواب میده یعنی با آن تولیکی ما جواب میده یا من به شفاف رو میده و من نشون میده یا با انتون بیماریش خیریه یا من با جواب سبور باش عجلا نمون ببین جواب دادن ما فکر میکنه اجابت یعنی فقط برابر کردن نیاسهای نیاز اجابته اجابت دادن یعنی از جواب دیگه سوال از جواب آقا به خواهیتا جواب دهم ده ما فکر جواب دهم یعنی فقط پول بدهم نون بدهم این جواب نه اون جواب جواب میده حالا این یا پولیه یا کلامیه بداخله تو چیزی خواستی پاسخ خواهی شنید و خواهی فمید که خدا به تو و جواب دادن. باید باید ببینیم که سالات و قام سالات در مفهوم قرآنی واقعه بسیار بزرگیه یعنی از نظر من بزرگترین واقعه معنوی و روحانی که بر انسان در این جامعه طاق میفته واقعه قام سلاط ببینیم اونطور که ما تو قرآن میخونیم حضرت الگاهیم بنیانگذار ایمان ببینیم ایمان ایمان تمام ادیان الهی و ابراهیم ما پدر ایمان می نامد حالا این پدر ایمان ها. نه پدر دین. دین پدر بود حضاران اون بود این ایمان بعد از اون پیروزی بزرگ در امتان الهی بعد از زبه عظیم زبه بسرش خداوند در حدیس قدسی راییم از از سوال میکنه که ابراهیم هرچی دیگه از ما من بخواب تو دیگه درنازمان اینقدر عزیز هست فرقی این ماجرات قرآن هم هست دیگه نسی قرآن که اولایی میدین افضای میخواست میگه من و فرزندانم رو مقروم صلات بکن حد سلاس بکن ببینیم؟ چیزی خاصه. پس مقروم قبلا نبوده دیگه ببین. که هم قبل با خدا بیوانه بودن نه بیوانه نبودن خودی پیانبر هم و این پس یک واقعی جدیدی افتفاق افتاده خامه سداد اقامه مفهوم مطمئن عام و نیاز با خدا کردن نیست سداد یک واقع عدی میگه این که سداد میراج مومنت پیامبر اسلام بگه به شعر و شعر که نمیگه واقعا نمیداره آه قلم رو به میراجی و همه درجات میراج یعنی دیدار خدا حضور خدا درش حضور خدا گبرامین هم این چیز میخواد بلد از اون همه ماجره ها ب <تصفيق> خب این باز ما روایت داریم که از این ما از خود امام زمان که شفاعت ما به تاریک و سلاتان نمی رسه خب این بازیم دیرگاس اگر سالات همین چیزی باشه که همه ما برخواه می کنیم و همه هستیم پس ما همه به شفاعت اولیو برستیم و پس همه رستگاهیم خیال راحت. حالا که ما در برآن می که آقا جون قبله للمسلنی هم داریم باید از بتر خودم بگو نزنیم. این نیمی که شده که تارک و صلاحات ها شفاعت ما, ما محلوم هست خب این صلاحات این مفهومی لغوی بسیار زیگاهی داره مفهومی وارستدنه صلاحات صلاحات از مستر یعنی صلاحات هم که ما میگیم در واقع صلاحات اللهم از صلی محمد و محمد مفهومی لغایی یعنی این چی؟ یعنیم با محمد و محمد وارد شو ببین؟ وارد سو یعنی همان صداد کن یعنی خدا صداد میکنه بر اینها ها تو داریم ما ما در مراج داریم که پیانبر به اون سیده سوی منطقه هایی که مدیسه جسایی وقتی میشه هر حاضرش میداره و میبینه حضوری نیست در اونجا صورت و میاد که برای بردی های سو بر صلاح هست اینکه بر که صلاح میکنه؟ اینکه بر علی صلاح میکنه ببین؟ باز خدا هم صلاح میکنه خدا وارد میشود بر کی؟ بر اولیا خودش ببین؟ بر اونجورشون وارد میشود دیگه که چه شود؟ بردیشون وارد میشود در مگیدن که خانه خداواز از قلب و بیت الله سوغن هدس قدسیه سوغن پیانبره میره تا تو خونه خودش بشینید یعنی وجود اون یا خودش رو خونه خودش برای امامان در واقع بیت الله هستن بیت الله زنده خانه خدای حریزی و زنده اینها هستن برای همین جرمه رفتشی و امامیه مسئله حج رفتن و اون کعبر رو دیارت کردن یک همه صانویه و خیلی عزد تورفایشه یه همون برای کزی که امام زاری حتی مفتی هم مطمئن شدن که آقا اینا دیگه داشتن نیست بلکه اینها خدای زنده و خدای واقعی رو خانه زنده خدا رو دارن. برای همین تعبیر واقعی امام حسین در کربلا همون به همین می‌گرده که ایشون مراسم عزاداری رو نیو تمام رها کرد و به همین دلیل ایشون لوگ ملحد هم جا و خونش رو به باد و این دو تا دلیله دار که ایشون بگو شدن تا وقتی که حضرت امام در حقیقت داره مومنان رو امتحان میکنه مؤمنان خودشون که چند از آنفر بودم که آیا بین خانه سنگیوگدی و خانه زنده فرد واری میشن یا نه خب ما دیدیم که همه گنگراشون رفتن دوری مخونه گشتن و بعد از اونجا صاف رفتن به دربار یزید گفتن خب برمی که اونها چیلی میفرستیدن در که اپامه سلاس با خدا یکی ذهنی، یکی قلب. قلبی قلبی که بگیم یعنی روحانی است ذهنی نیست دنیایی است، جسمانی همون هرچی در ذهن ماست. ما در ذهن ما در دنیا دنیایی داره. اما ذهن کارگاه و انبار دنیا است بلا همینه که ایمان عمر قلبیه، یعنی خدا در اینجا در میشه اینجا درک نمیشه چون خدا تو دنیا نیست خب از دیگاه ذهنی و قلبی بودن دنوب نمازه دنوب خامسالات با مفهوم اینه که ذهن قلم روی دنیاست دنیا قلم روی استفاده خیل و شرده سود و زیانه باید و نبایده قلم روی دوگانگی هاست بلا در دنیا یعنی در ذهن خدا درک نمیشه چون خدا یوانه هست در ذهن نمیشه توبیده رو فرمیده هستن یوانه همینه همینه همینه خدا همینه است. همونطور که دل هم قلم روی درکی صورتی، انسان حیات اصیل خودش رو در نمی‌شه تا چکار نشه؟ نه تا تو کار دیگه خودش می‌خواد تونم با دیگر فناوری مراقبتی روش بگیره دو هیچ چیزی تو کار نباید نمیشه. همونطور که قایدی این دنیا مارگونیستیه فناوری، ولی انسان حسی اخودش رو حیاتش رو می‌دونه خودش رو در دیل صورت می‌کنه. همونطور که مانو اجازه صورت می‌کنه. ابدیه صورت می‌کنه خدا را اجازه صورت می‌کنه. کارم رو این دعایی معروف هم استجاب لکن یعنی بخوانید من را تا جواب بدن به شما مربوط به اثبات قدرگی به خداست نزدیه و درزه ازا میگه که اون استجاب لکنه یعنی من را بخواهید بخواهید نه نون آب و مخلوقاتی من را بخواهید اون میگه شما نخوانده هم من به شما دادم به اندازه خودتون بیشتر از این اگه بخواهی حس بهتون بدم تباه میشید نه خواهی دارد راضی باشید راضیم همچون دادم من چقدر شما بسته بیشتر از این بخوایی بازا بنابراین خدا رو با که تا جواب بده نه چیزهایی از خدا خواست خدا را خود خدا را خدا, را خدا خواست این مربوط باسته قلب میمیشه یعنی ذاک وحدانی خودش رو بست خواست آه؟ این مقامیه که اقامه صدات برش پول میاد اعتباط قلبی با خدا ما وقتی نمال نماز نمال مشتقانه ظلم گناه داره محصیت اون که اونو خدای که آدم تو کلش اون میخونه که خدا نوم بده آب بده غرزمون بده مریضیمون شفاق بده بچه فلان کن ما میرونی که خدا این را جواب نمیده چرا؟ برای اینکه است؟ آره از یه لازم و لازم توحید ما میدونیم وقتی میگیم خدا این رو بده اونو نده یعنی خدا اونو نمیم دیگه یعنی خدا حالی شید با تواجیه که و گرباتش شده حالا میگیم خدا خبیره بسیره شمایده برمه میبینه کم بی کم مکثار به ما رو هر همه راه میده یعنی آقا اصلا نیاز میکردی بگه از چی بود ما خودش نده از امور همین. خدا. خدا خدا خدا خدا هم نمیشه و انسان اما اندک نتقادیم خدا را باش از درست مید ما دا قرآن داریم که از رزق تو نماز برای یاد خدا بستی باشه یعنی چی؟ این نماز برای نونها نواست باشه ببین از هدف نماز مشخص شده این نماز رو برای یاد و خدا برپا کنید. این نماز بستیده بشه که خدا رو به یاد بیارید خدا رو بدهی هاستون بیاد نیارید ببینید؟ ما بدهی همون رو گرفتاری همون رو بدبختی همون رو صرفقاری رو بیاد این نماز ذهنیه یعنی این نماز این نماز گناه مأسیته خاندان خدا با واسطه زن با باسطه گمان ها و خواستای های دنیاوی شرک قرآن میگه و هم که درم نماز شکلی هم به این شرک سامیشه نماز ما شرکانه سامیشه اینا دوباره انگار خدا رو یاد بیاریم خب مثلا برای ببین چه شما میری مثلا عکس امواج از دوستای از اصدادتون بیارید نگاه تا به یاد بیارید نه اینا بیان بیاری چه مثلا از اون خوبی مثلا از بابا تو درگذشته مرده که یاد داشت تا که مقول نیستش یاد بیارید یاد از چی بود محبت ببینید وقتی یاد صلاح برای یاد فقط از محبت میتونه باشه نه طلب کاری آه. این هم برای اون دیگه از سمامیتونه یا مثلا خب که یاد خدا اون که این روزه شیر شده همونجا قلب قلبها رو اطمینان رو آرامهش میده اما؟ روزه نیست یاد خود. خوب خب مثلا ما همون تو جامعه هستیم که بسیار نماز میکنم و تو واقعا میبینیم متشمدشتن آدم ها آه. خیر دوست من اصلا این که نمازی خود پاسی اینا رو دارید یا سرماخوره دیگه خب ببین باز این ازون نمازای که واسه اون ما نماز خودم شخصا تو تجربه تبوابا دارم مواجه با خیلی از بیماران روانی لاالاجی می‌شدن که اصلا بیماری‌هاشون واقعا اسمی نداشت به تجربه مواجه شدم که اینا واقعا نمازشون مثلا وسواس ذهن ها اینا نماز رو تایم جدا هم روشی انجام می‌دادن خب مشوره می نمازشون صفو می‌داد یه بود که چنان بسوار واسواسی بود که بسیش که شد در همون خفه که از کشته بود خب ببینیم؟ و بسیارم متشرفی بود نواز شب ها می کن خب این خوب شد ببینیم بعد تا یه هم می سنه خطران که می به خدا برسونه می به شیطان هم برسونه همینطور که در قرآن سخن بسته یه از جهنم هم داریم همین بر جهنم، با بر جهنم می کن خودمون تجربه نماز هاجرنمی رو صبح‌هاتون داشته باشیم وقتی نماز می نماز تام میشه تو بنا چیزی 않는 در معنی دیونه کلافه متکفل این که خوب و این دیو میشه میگین ما با شیطان دیدار کنیم خاطیشیم با ما بود نماز دو زخم اونم با ذکر نیست که قلب رو آرامش رو قرار بده ذکر هم با باشه ذکر خدا. نه ورد خدا، یا الله، یا الله، یا الله، این ذکر نیست ذکر یعنی یاد به عربی ورد هم، ورد ذکر ذکر اونها ما فکر نکنیم بسم الله، بسم الله، بسم الله ما داری بسم الله اسلام گفت تو کلمه با داری اون پور مصاب میکنیم خدایی در پایستی نستیم، یاد خدا نیستیم از این نوع گفته میتونه ورد محشبانه باشه و عذاب آواره هم میتونه باشه ببینید یه یه مثلا سوره همد رو شما نگاه کنید سوره همد رو از خود پیانبر از علی هست گفته شده که سوره همد و ساله قرآن هست در این که ستونه بر هم نماز بر هم با همده مثلا که نماز با همده ما باقی حواشی نماز تا بشه خب این سوره هم چیه ما چی میدیم اگر دقیق کنی چی میدیم که متاسبان حتی دوست نداریم که می‌رسه می که حتی که چه می‌گم که خدا به ساعت عمر می‌دونه این خیلی خوبه. واجبه چنگین هم 23 تا هم داریم از اول اون دعایی که با معرفت اخلاق خوشه واجبه میشه. یعنی واسه هم بفهمه درش من ندارم چی میگم؟ واسه خدا ور اجازه میشه برای همین ها اصلا اقامه نماز میکنن فقط برای اینکه بعد از نماز بشینن میگن به فقط به این نماز چه استفاده های کافرانه و مشتقانه از نوازه میشه نوازه میکنن تا آخرتاری ترکاله این خدا بگن به زبان فارسی، به زبان مالاری نوازه این پس انسان بایستی بر سر نماز بایستی چیزی که اینگه بفنه اگه عربی میگه بایستی عربی رو ضعیقا بفنه و حتی باید احساس کنه کلام عربی رو آیات خدا رو سبب استفاده که استفاد قلبی به خدا کلامات بایستی احساس تا برای احساس دار بودن کلامی که انتا به زبا میره ده هست همه دردن انسان به چیزی نمی کنمه چه احساس میتونی داشته باشه جنون میدام میکنه پس باید نماز رو با معرفت خون همه آدم برد به همه داری چی میگه برگی نمیزنیم به فارسی بخونه ما این که تلمان فارسی صوره هم رو که نماز بود رو به فارسی یه یاد داد دست هر الاسلام به فارسی یاد درس خودت بفهمی دیگه خود خدا هم میگه این ما این مردمان من میدونم چه چطور چه چیکار باید بسازی اینکه به زبون یه ببینید قیسو بس بفهمه چی که میگه ولی ما دیگه چطور انسان خود از زبون خدا زبون نمیشه تمامی دین برای معرفت كل فنابر میگه دیگه بر معرفت نباشه نمیشه حد درقل مرفض فهمی ذهنی هست که دیگه این حد درقل مرفض شد این حد درقل فهم منطقیش نید که انسان بخواه این داره خب باید همین سوری هم رو شما نگاه بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الحمد خب این را چی میده؟ خدایا تو مهربانی تو رب العالمین هستی تو مالک یوم الدین هستی من برای راست دارد کنینه خوب. پس انسان داره چکار میکنه؟ هرکدای با خدا. آره دیگه انسان داره هرکدای با خود. در سریع سورة هم، اسارت قرآنی، قرآن که کلام الله است، هم دنبال دیگه چهلامه کلام خداست دیگه. ولی اینجا انسان داره چی که خدا گرفت میذنه. در سورة هم، خدا داره انسان داره دیگه. دیگه خدا منو اداره که من انسان منو انسان این برای میگرم به با همه مفتومی که نماز حدیث نفسه اونتا حدیث نفس انسان دو کارگاه و کانیوی نفس داده یکی دل ایک ده حدیث نفسه ده دنیایی شرکه حدیث نفسه قلبی اون ذکر اون به درد اقامه سلاحات میخواه این رو رفتیم صحب هم گفتن باختشتن نماز سلاحات این صوره هم سعی زیر بنایه سلاحات انسان در هر زندگی است. انسان در رفتن رو خدا در رفتن می‌داند یک دلیلی که ما دوست داریم که ارائه بیانیم فکر و فاسیو فریم خرابشده بگویم خدا در رفتنه حالا که ما دریافت خدا به این ما خدا وجدی بیانیم که خودش زیمون کافیه دیگه حالا شدن همین نوع نگرش خودش کافیه کنه کم نمیزنه. یعنی این ما فکر خدا داره این انسان داره رفت میزنه خب یک سال دیگه اینجا بیش میاد ولی در این آب هم کلام بلایه بلانه دیگه کلام خدا دیگه ولی انسان داره رفت میزنه خب این چیه این یعنی چیه خب این یک و عرفتی خوب ما معتقدیم متقریم برونوان مسلمان افتیسا مسلمانشیه که انسان خلیقه خدا سن انسان بر خدای خدا, خدا هم شده انسان مطمئن ذات وحدانی خداست. خدا سن وقول علی خدا خود خود انسانه خب خب از اینجا انسان خدا دو نیست هست به واسه انسان وقتی داره با خدا وقتی در اینجا داره بازار گذشته می‌مونه چرا اونجین نماز می‌گی جدا پس ما نا dictated یعنی تویی که در زاوش شما هستن دیگه ببین من الان اوله سخن گفتم با خدا این دو سخن گفتم با ذاتش هست این نماز مومنان است سخن گفتم با ولی این سخنگفتن با ذهن که قدم روی دنیا و مادیت و حساب کتاب و خیلی و شهر و پول و دون و پلوه این نماد مشتبه است. این صلات نمیبذیر بود خود هم نشون میده که واقعا انسان خریده بود کلام الله انسان داره حسی این انسان داره بزنه خود رفت بزنه با کی با خدا با خدایی که؟ با خودش در این نوال انسان داره با خودش رفت بزنه تون نیست طرفش نیک اگه بود که طرف میراج کرده اگه نگه من جد خدا نمیده خب میراج کرده یعنی حق صلاحات امجام شده میراج است خب, خب موهای که نرسیم بنامی به خودمون را گرفت میدنیم ولی این خود خود خودمون این خداست برا همین انسان اگر این صلاحات رو با ایمان معرفت برگزار کنه تماما معرفت و ارفانه تماما رای سلوک الالله است ببین سلوک ارفانی کسی که این صلاحات رو با ایمان و با معرفت با کنه این کمال صلوک ارفان میسید واقعی میراجه دیگه صلاحات میراجه بگونه می داره چرا؟ ببینید انسان داره بازایی تو خوش اطفال به داره میکنه ارفان یعنی چی؟ یعنی تا یه طریق باطن میگه اهل ارفان یه اهل باطن، اهل ده اه؟ طریقت یعنی راه باطن یعنی انسان به خودش وارد بشه تا برسه به خدا از خود تا خ در واقع اقامه سلات یعنی تیل طریق از خود تا خداست این تا خدایی که در ذاته بنابراین اقامه سلات برای کسی که خدا در ذات خودش بفهمه و احساس کنه اقامه سلات راز نیاز تحسانی که خدا در آسمان میدانند نیست. این ما در اینها کلی حدیث داریم در اینها یک از حدیث اینه که بی امام را سلات نیست کسی که امام نوار خب خیلی حسنگی خب چند نهارا از اما امام داریم ما میداریم که منظور امام حیه. نه امام فردی که اما میگن امام زمانی قایب هستی ایتایی یعنی از چای در میاد امام هایی می که من تحت ولایت و هدایتون باشم امام زنده ما توی کتاب اصول کافیان در من آماده که گفتن آخواست بین امام کافره بین امام نیست از امام سوال میکنم امام هنگی امام زنده این امام غایب اون امام این نیست داره با را کردیم امام هر انسان مومنی تو قرار هستید که مومنان هم دیگه است یعنی امام هم دیگه است به هم این است هر انسان نگه در این مجموعه قرمی داره این امام در با او است که من هر باید با خب ازای چرا امام همطور گفته میشه که بی امام کافل است اگر این بی امام را ثلاث نیست یا ایمان نیست یعنی دینش قلبی نیست یعنی خدا را در درش و درک به تذکیر نمی کنه لذا نداره اگر بخونه هم فقیل در, در مسلیم یعنی ریوانه میشه، یعنی گمراه سر میشه منافر میشه والا چرا امام، من امام داشت باشم مومن میشم، چرا؟ ه راز همین تمام خب. امام و در سطح عالیه، عالیی مؤمن کسی که خداوند رو در قلب خودش هیو حاضر و ناظر بده لزا وجود او شای از نور خداست وا او در واقع من به خدا یمان فرت قلب من این ایمان باور دهو نیست فلسفی نیست با هزار سال فقط به اولین وصفنده انسان ایمان بیاره غیر نور خدا رو در یک موید میبینه و لذا ایمان میاره می که خدا هست و خدا ایمان میجاره این در در تجربه خودمون هم ما واقعا داریم ما اصلا می‌بینیم دیگه انسان میبینه 5 تا واش چقدر دل ما آروم می‌گیره می‌بینیم در موقع ایمان آورده کلام وقتی کلامو در یک جنب یک مؤمن باشه همه واسه در اون صلواتی اونجا هستند همون از اکی لفتن جواد و ببین یه امان توی جنگی دل همین بگیره آرام میشه انسان بامامون هم میشه نه قم قسته نظره ایمان برای نداره نداره این در همین حد بشابه اصول نخوادی به سیاس یادی داره تمام مراحل نماز خودش دریای شبت داره قنود سجده ازان رکوب و تمام باجه ها کلمات شبت اینجا نیست ما باقید کلیجز رو بفتیم نماز سجده است اونجا که اونجا تو توابیرسه بلا همین میفرموانی که عدلی با سجده بیخوش میشده اونجا با خداوند دیگر میکنم و باقید شکل قادف توییم کرده برای امچو اونجا اوجی، امچو اونجا میلاد، امچو سویست. یه کمیش رو بکنیم. خب سویسته باشیم که بکنیم اون سال مال. خاک دیگه نه خب با چی شد؟ پرستی مالیه. این دو ریشه دیگه, دیگه بود نه خوب نه. از یه لحظه بقول ولافا اسلام و به خصوص مکتلی المعمی و تشریح، بود پرستی انسانی است. انسان برستی نه سنوچون پرستی نه در و تخت پرستي من منتها خیلي جالب بعض جا می امام میگه آقا امام شرک آغا هستم کفر انسان بعد اعتفاد مستقم به خده پیدا کنه چطور من تلویزیون میپرستم شرک نیست سنو بچههام میپرستم درو دیوارو میپرستم خن میپرستم آهنپار اتومبیل میپرستم اینا شرک نیس تا چوبد بسر امام شد شرک شد ج نخیر انسان طرقه امام به خدا ایمان میدا بساله کیو در واقع ایشت ملمندات میگونه انسان با یه آدم کافر میشه حالات وحشیانه و کافرانه میگیره با این مومن میشه آروم میشه خود ببین فزای مومن میخوری دیگه فنی ساده دیگه داستان ایمان امامات امامت همین میسوزه بر خاک ما میگیم انسان دین کامله و ختم اوवते لو اوवत خاصو نمیگه خراب خاصو دیگه قرار نیست کسی خدا خبر بیاره چلو برای اینکه جاوال حق و زهر قلباته برای حق فرود اومده آخر الزمانم برای همینه زمان با تاریخم به بار چون تاریخ بشر زمان اثبت تو با خدا تاریخ بوده دین آخر الزمان به همین دلیل که دیگه انسان با خدا ایزار کرده و خدا دیگه در مقابله چشمه آخر الزمان زمینه قیامته خب سجد خاک یعنی سجده بر اون انصاری که خدا در اون تجاربی پیدا میکنه و حضور می داره که عالیترین خاک هم خاک حدود امامه. خاک زنده برای همین حضرتی می که قلب من عرش خداست اون خاکی که عرش خدا به حمل میکنه. یعنی سجده بر خاک فقط در اسلام ادبای تاریخی هم هلکه قبل اسلام سجده بر خاک نداریم سجده بر بود داریم ها آه، باید خاکی نداریم، خاک, خاک مهد این در مورد سویزده هست الان که هم باید دیگه که مثلا خواهد کنون قنوط. قنوط دست به آسمان نیست قنوط اینجوری میستش که حالا که اینجوری مخونن اصلا خود همین نشاندنگه نگه رو نباید نماز مخونن دست رو به روی دل تا <سؤال> در واقع انسان داره از دست خودش داره اینجا آدم باید تقباش از خدا بگیره ولی این دست دست خدا نیست دست انسان ولی در اینها ممن در دریجه خلیفه خداست در اینا دست خودشه اینجا دست خدا دست انسان یکی همطور رو گفتیم باقی اقامه سلاک باید کنه حد سیر و صدوکه ارگانیست سبب سیر از خود تا خداست خدایی در خوده نه خدای در تمام مراحل ما رو حد مفایم ارفانی رو ما در صلات غلانی و صلات اسلامی داریم در مرحله مرحله و چنان رو کلیمی در حد عرفان حضور داریم ما باقره چند تا اشاره می کردیم این مسئله همون سجده بر خاک که که گفتیم دلاز سر پیشانی بر خاک مالی دونی ما گفتیم سر محل درک دنیاست. است رقا این به خاک نزیک کردن و خاشد خاک مالی کردن خفو نیستن یعنی شدن خاک خاشاب شدن دنیا رو به خاک نزدیک کردن خوب. خود همین در واضع انسان رو به فکر که در خاک چیه در خاک همونطور که انسان وقتی میمیره در خواب دیگه آه؟ این دنیا میره به خواب انسان در سالات در واقع پیشا دنیای دنیا خودش رو به خواب میماله و اینجا قانون دنیاست، آرزوها، آرمانها، خواستهای دنیاویه اینجا آدم از طریق چنده شرگز نمیتونه محبت داشته باشه محبت اینجا خدا توی کلمه درک نمیشه برای همین هزاران سال اونایی که خواستن خدا را از طریق کله از طریق استنده های منطری و فلسطفی خواستن ثابت کنن آخرصری ماتیریالیست و نهیلیست شنن یعنی ببینش نصبی با خدا را نیست آقا علاوالش همون نبود ببین؟ پس کمال ادراک لب را مورد خدا انکار خداست کفر ببین برای همین عرفا ها رو و کافر میدونن ببین؟ و دینی که فلاصفر مطابق میکنند رو ها در بغا شیرک نگاه ها کافران اسن اونا خدا رو وق ر خان کردن. اینجا باسی به خاک باس در اینا خاک تربت در رس قرآنی قانون ربیت در اینال ن قنون ما می‌دونیم ادب و تربیت انسان به میزان خاکساری انسان در فرهن ما لغت بکار مر به میزان این انسان دنیاش با خاک نزدیک میکنه ممن با ادب متمازه با محبت آخه خوب. اینی منشاء تربیت خاک به من تربیت. تربیت هم مستر, مستر تربت. در این حال رب هم از تربیت و تراب رب تراب و تربیت. می‌بینی؟ راب پدیده نی خاک‌پریدی، تدیب تدیدی، تدیب خاک خاک شدن. همه اینا یک مطلب. و تو آفرینش رو زدگان این راه هم تو که انسان داره او که اون روی تدیب و تدیب است، وقتی که متواضعه هست آها، قاله، تعلیم می‌فریده و تدیب می‌فریده. این میزانی متواضعه خاکی. انسان میزانی متوجه بوده نه این میکس میکنه نه تدیب. یکی از از دنیا نموید تراب رب جایی بسیار تحمل در واقع تراب قلم روی رب العالمینه تو عالم اصدی عالم اصدی خاک دیگه ماده اولی کلی کارینات خاکی رب این خاک حضور ربوگویان برازی باقی و از سوشده بر خاک از ببینیم اطبال مستقیم ایمون رب داره قبلی ما وقت میخواهمیم نزدیک بشمون همه ایخی رب رو صدار در واقع میشه که صلاحات واقعی که هست چی که انسان بخار نزدیک میشه استعلاف پیدا میکنه به خدا نزدیک میشه معراج میده واسطا درست هم بعد رکو رکو ترضیم وش چیه ترضیم بخار ترضیم میکنه تده طبقه هم مثل کنه ولی داره به خدا درد نمی کنه ولی خاکه سبحانه ربی العظیم و ببهمزه. ببینه رب العظیم ببین تستوشده باز رب العلاق ببین باز رب همه این رو برمی به تراغ این جمعه ویشه لغوی دیگه بازه نکته دیگری باز در رقام سلاک مساله اعظان اذان یعنی اذن، پرمی ورود گرفتن اجازه گیرفتن. یعنی یعنی اجازه گرفتن برای اینکه انسان اجازه بگیره برای خدا ورود اذن دیدار در واقع، رخصت گرفتن اذن. شروع شویی از با لاکپاش میشه. تو میگی چای واسه دیدم. من چه لذت قراره واسه باشی, باشی, باشی, باشی, باشی, باشی, باشی. یعنی چی؟ یعنی خداوند برسن است. برتر از چیه آه؟ بلی برتر از هر چه عالم هستی از همه برتر است. خب ولی این برتری مربوط به ذهنی و شمور من میشه دقیقا بلی برتر از ذهن منه چون من آدم از سیر سفر زهن درک میکنم دیگه یعنی خدا برتر از ذهن منه این برتر از فهم منه ببین یعنی انسان با شمور الله اکبر هم ها در واقعه ذهن خودشو داره تثبیت میکنه بذارید میشید الله اکبر الله اکبر در واقع حسین محضید این تا دنیا حسین محضید اندیشه داره, داره با فهم خودش از خود ها خدای ذهنی ما گفتیم خلاص میشه خدا برستیم، فقط راستیه الله اکبر این خدا از ذهنش مشور من در مورد فهمش بواسطه یعنی خدا بر اثر فهم من نسبت بود یعنی ذهن من خدا رو اینقدر گفت تا تا کار رو بیده به دل تا کار به دل رو بیده الله این انسان خودش رو سوشوی مغزی میده جنیا رو اطلاع داشت می‌کنه. میکنه چهار باش اینقدر باید این رو گفت تا آدم کاملن احساس کنه که ذهن تسلیم شده ذهن باسته باید باسته که خدا برسر از فهمی منه که چه بشه؟ تا سجده بر خاک واقعی باشه نه بستی پیشانی رو بستی بر خاک مدید دیگه این ذهن رو بستی به خاک مدید این املاکتای مقدمه این سجده است که آخر کار است. یا مفاد عظان و آقا هی حیا الاصدالات ریاض الاصال رو مردم ترجمه میکنن که بشدادی برای نماز بشدادی برای لستباری. و ما میدونن که این هر یعنی از زندگی میاد این بشدادی مفهوم سالانگی و در واقع یاد واسه حتی تعریف شده یعنی شد. زنده میشید بر سما ببین اینکه میگیم سلات اقام سلات بزرگترین واقعه در دل عالم هستی برای انسان در اینجا قنا زندگی چون زنده حید خود خداست زنده خداست ما یک آیهی از این زندگی نفذیر زندگی داریمونم در روز کتاب میشیم گیرم در حقیقت میشه گفت اقامه سلاح یعنی اتصال به حیات جاویده زنده شدنه زنده به خدا زنده شدنه این حیات جانواریست در حقوقه حیال اختلاح یعنی به انسانیت زنده شدنه زنده شدنه به روح زنده شدنه به روح حیات بخونه خب این مفایلیم رو در واقع فقط گفتیم تا اهمیت صدا روشن بشه تا انسان نمازهای مشکه رو خالصتر کنه مثلا گفته میشه که استنادی با آقایی در قرآنه که خیلی هم مشتبدید میشه برای کسایی که صدا تا به خدا کردن نماز میخواند رو بهش برن نماز میخواند رو خدا پولی بیشتر بهشون بده یه است که تاریخ و ها یا ای آیه هست که چندین گروه خدا به خدا وعده میده به دوزخ، زخم فاسقان تومزنندگان فلا فلان، و تاریخ و سلات ها سمید؟ این ای مجموعه با هم است اونتا نه آقا اگر نماز نخون بخارم این آیه ها رسانسور کرده همین کلمه اگر نماز بهش میده نخون نمی جنبه بس کنیم یعنی کسی که اهل سلاح بوده و چه گرده ترک کرد، یعنی مومن بوده و ایمانش چه ها فروخته دینه به آساچه به زفر خلاده کسی که جاهل بوده نیومده و جاهل از اونیا رفته اصلا ایمان براش پیش نیومده حالا که خدابند کنون تو جهنم نمیداده خدابند بسیار میدونه همون روی خدابند نگه او کناری رو خود در دوران جهالگر از جهان نام دادیم ما همه رو بخشید و خودی گرفتم اگر در آذوب حتی مواجهم نمی‌کنم کسی هم در عذاب ببین پس این آیه ما گفت نماز آنها که سالات نمی‌دانند چیو نخونه نیست نماز نخونه و جان نه آنها که عادی سالات بودن و ترک کردن سالات ایمانی آن یعنی ایمان فروخته‌ها فریم مفروضه کلام مناسبه. این کوثر یعنی تو به تو میمون. خداوند است به کسایی که ایمان به اینا داده بوده خدا ولی اینا مال خرسن هزار برابر است کسایی که هرگز بعد ایمان با ایمان آشنا نشدن در دوره جاهلیت و کفر جاهلانه درس در سپری بر میگونه خداوند اصلا بسیار مهربان میه. اما در که خداوند که اونا چیزی تو خدا معنا نمی نشه. ولی مؤمنان خود پیامبر میگفت تو خدا چه معجزه‌ای میکنه یک سری دفع خدا خونید تو با چه نوع ذوقی نذار می‌کنه؟ با چه نوع که از هم باشه؟ یعنی خداوند د روشن پیامبرش پیانبره پارتیش خدا می‌ذینه برای خدا. این پارتیش خیلی داره. اصلا خدا بهش تخفیف تخمواز نمیکنه چرا آقایان که نه خورش همیش اصلا جایی داره جای نه این جوید نبوده بی نیازی مسلّب نبوده در، از خلفی خودش یاد مومین خلفی خداست. مومین خدا خداست. مومین در قلّه رسم خداست بیه. مومین و مهمان اصلا خداست. ببین، بر خدا خداست. برایم وقتی میشه کسی که به دیدار مومین می‌ره، خدای می‌کنه. یه از دیگر اون با، اینا هم و بعد قومش ساده و باستی که ایمان آبود، اون بخواست به دیدار خدا نگه و خدای ایمان آبود، الله داری ببیندش اقام سلام دستانه خدا دست. خب، نگم بندی کنیم، اگه سوقت رو بکنی، خلاس مطلب، بس نمیشه که سلاح باستی، برای یاد خدا باشه از اون بابت باشه با سلات و با مسلات بالی نکنیم سلات سیاسی نکنیم تخصادیش نکنیم ریایش نکنیم اکراهیش نکنیم بزرگترین مقام در دین سلات از تاعت عمودتین شخریت نیمون ستون و خیمه دین را ما میدونیم بزرکتر مشکل همه نمازخونه های سهلی تفزاره و حواس برسی نماز نمازه خود همین نشونیده که اون نماز رو نباستی حقام جا الله اکبر هرچی آدم دیگه میشناسیم جلو ما صف کشیدم هرچی بده کارا, کارا، هر هرچی دشمنه، هرچی کینه هرچی انتقامه، هرچی فرشه اونجا, اونجا تانگیمالله اکبر اینگر اونگار ما ابلیز رو داره گرمیم آه اونگار شرکتی ما رو مهاتره میکنن بله همین دوره واقعا همین دوره یعنی یک کسی که خدا رو در آسمان ها بیستوری میکنه با قراره میگه اون مشتکه او هوای نفسی داره سپاد میکنه صدفان هوای نفسی که ابلیس چون هوای نفسی با میکنه خدای نفس هم میاد ابلیس میگه می بفرماد. در خدمت هستم. ابلیس چی میده؟ آتیش میزنه نفس انسان رو. برای همین نظام چه این نمادی اتمیدان قلبی نمیاده. آرامش نمیاد. بلکه انسان رو میسرد انسان رو سیار میکنه. عقل همه چیز از انسان میگیره. ابتدایی ترین حد بابره حتی زهنی هم از انسان میگیره هستم.